say no to get khareeda holo sathe sathe na дина, то можам да го пополнам. Дина, со мене да вари но на роди. Вади ми од اخرен жол 31 2 5 4 ако сега маш, рабет ми тиле, јадил галу суро. Натом биди اینجا سفینه‌نده شما؟ مأمور بله نیرو انتظامی مأموره. چه چه نه شده؟ نشده. کنده شد ای بابا تازه من چسخونده بودم مهمان داشتیم چلی؟ با یکی به چیزه... چیپش کرده بودم من اون چیزش اختاف حالا در خدمت هم مشکل بشیم سرکا تو سیمان داری؟ سیمان نه خب بلا مهم نیست بایدن درستش میکنن یه ظرف بیار با یکم آقا سرکا مهلا مهمان دارم بایدن درستش میکنم باید بیار کارتن دارم هیچی چیزی ما شده سیمان میخوام سیمان برای چیز هر کار دار این دیگه بله بادیه بادی که من که اینو مارو من نیستم پرده باید جواب بدم به صاحب کارم خودم بعدا درستش میکردم دیگه سرکا کجایی؟ چی گفتی؟ پرده باید جواب بدم به صاحب کارم خود چقدر اون شکلش؟ بابا نه با. <تصفيق> این چه حرفی شرمنده اون می‌کنی بابا من خودم انداختم خودم میدم دیگه نه بابا این سنگ ده به صد میافت اصلا منو خرد کرده اونو بذار جیبم آلاوات کار داره خب پس صدا این خونه مزاحم بود ها نه خیلی هم خوب بود کلاً نبود نه صداش خوب بود پس کی به ما زنگ زده زنگ زنگ زدن میگن خونه مзоваه می من زنگ زدم یک زداد دیگه من که نبودم خیلی خوب فهمیدم دیگه تو نبود بس قاط قاطی شد دیگه بس خوبه همینا برداد به سنگ بغل آیفون گذا داد اون رو بچسب باش بیا نماش روزی الله خد دست به نزد گذاشتم زنگه تو راه رو را پشت در باش باش فیزه از ما بریم سر کن تو چه خبره بچه هم خط نکردم مشکلیه خط نداد بیداد دارم بعد یه جشن خودمونیه دیگه خودمونی پکو فامی نهرم که نیستی چه کار کنیم الان بولوت چش میگن اون چرا دو نه فا هر چقدر میفهمی بده دیس خوبه آها آه باش حالم میو خدمت ما همینجا o farme vai só o que é? o que é? کلاتو اردار توی این هوا اومدی پشت پنجره لخت چرا چیزی نمیدی؟ ها کن بده بیرون ها تو گرفتارم چند کنم همه گرفتارم دنگ دو میلیون هم اومشب بگذار از ما هشتاد ضرب شلاخ زریمته میشه ببخشید خیلی هم درداره بیستان بیستان کمه زیاده ندارم که کجا خوردی خونه نفیقه اونجا. کجا؟ پنجره. ام پنجره. حالا بدم پول خرج بگیرم ازش. تنهاست. نداشت که. میرم بالا. زنگو بزنم. زای نه کنی دیگه ساکا. عملو میزنه ما. Haa, c'era rafititum? بریم اینجا بعد جون شعره اینو بو کن بحبه این از روی که واسه منو بردی با بچه هم اینقدر از من پول گرفتی خوبه بوش شما که میخواستی اینقدر از من پول بگیری خب یه بهتریشو میابردی یه بهتریش گرون بود دیگه گرون بود نصف ایجاره خونه رو بریم میدیم واقعی یه از گرون بود اگه مجانی در میمهد عطر خویی بود نه؟ شما از اینجا باید, باید بریم ما که میخواییم بریم تو نمیذاری من نمیذارم آره حالا میذارم باید بریم باید بریم بریم بریم بریم ببینم جا بهتون میدن مسکونی اجاره کنین تجاریش بکنین کاسبی را بندازین همینجور کارتون کارتون جنس بکنین چیه؟ تعلیق کرد. اما منش طراحی نکردم اون رو. که یه کاری کاری ابراط و کلوف کاری فکر کنم. کلوف رو من نازک همین زیرش رو برداشتام. گره روسری تو واسه یه کاری کردی. من این موامو جمع کردم. حالا خوب شد ابروم؟ آره میاد. آید. آید. مومادا. آید. آید. یه ای. ای. ای. ت. یه بیا. ت. Ciep. Salamu alaikum. Salamu Salam alaikum. Salamu <tongue> alaikum. Shumaki so, guftin Tanhaan. Tanas. Tanhaan. Kalko man, ham, ham... تاخونه شون هستم این عطر رو ایشون انداختن به من انداختن من فقط اومدم اینجا که این عطر رو بندازم جلوی شون و برم اینجا چهره اینجا پس کجا راه رو دیدی ایشون هم من گفتن بیام سر شما هم اومدی بکنین عطر منو بدارین بله مالیه عمید مم. دیویستو من داری بدیم این آقا بره ها این چیه آخ نفر دیویستو من بدیم این آقا بله. بره بله چی نفر دیویستو من بدیم این آقا بره ما که کاهی نکرمیم که معلومه اینجا چیکار میکنین دیگه من که اومدم این عصر رو بزرم اینجا برم اونه چیه مقاشه مای چی مقاشه Shumar utuhun mi shengiru berin biru? Ina... Miad... Rish mi shi. Mi shi? Mi shi. Hamadun bahad cerime vedim. Imane Nacibis. Gale? Imane Nacibis. Inači ha? Ne censi di gerdobe ya vurdim, kastavim o. ما دیوستون نداریم با این همه جنس. ما دیگه همه رو داریم که چی خریدیم دیگه کُلنمون دیگه. پس چی می‌خرید؟ می‌خرید چه چیزایی؟ من ندیدم. من از من نخوردم. ما خوردن. من زنگ می‌زنم نیروی انتظامی بهشون میگم که شما بی دلیل از ما پول می‌خواید. منم میگم شما چیکار می‌کردین؟ چیکار می‌کردین؟ حالا دیگه. باشه کاری نمی‌کردیم که. ما که بگیم کردین دیگه کردین. سرکا من یه زن تنها همسرم چند سال پیش فوت شده. خدا رحمتش. خدا رفیقان شما رو هم بیام ورزه. من از دار دنیا همین دو واحد مطعونی رو دارم. بچه‌. نه خیر ندارم. ولی کامل رو مخمونام. همین دو واحد مطعونی من هنوز دارم اقساطش رو پرداخت می‌کنم. اون وقتی راقا با نصف اجاره به ها نشسته توی خونه. یعنی آسایش نداریم درسته؟ قبض آب و برق و تلفنشون هم بنده می‌پرده. خب من همش سفرم دیگه دو بدم نیستم. سفرم هم. هم که میبینین که اجر واسه من آورده تو اون آخرش حساب کردم. اگه پول نزادت نمی‌گرفتم همه چی حل می‌شد. خیلی بیخیال. همه چی حل میشه دیگه اگه پول نزادت نمی‌گرفتم همه چی حل. یه 43 از این بدین. چیه؟ شکی با حاله همین را آها من که قرونم ندارم از این پولو بدم این که بخواد میگیره به لکه دیگه این خوبه زنو نست آه روزو نخونه حمیدا چه میره خونی نیستم زنگ زدی راه افتادم گیر کردم تو خب حالا باد بدار گجا از این 42 تا داریم بره 2 میلی بشه جون کنیم من میرسونم چی شو من باد بالا بیارم چمدی بچ باشه پولش رو ما بده. شما خجالت نمی‌کشی؟ چطور؟ قرض داریم دیگه شریکی من. نه نه این برای جریمه خودت باشه. خب یه جوف کفشه دیگه بردار. چند نفرم مگه؟ خب یه چیز دیگه بردارین خودت. نه هم پولش رو بدهن هرچی دوست باشه بشه می‌خریم. آبردی؟ ها. 2 تومن رو برای چی می‌خوای؟ کرای خونه. خب همون جایی که هستی بمون. همونه برده بالا با همین پول جایی دیگه بده نمیدن با همین پول جایی دیگه بده نمیدن هني كويس والله ما عندي شيء فيك عشان فيك خلاص عشان نمشي دقيقه وياك طول لا نمشي الحين جيت خلاص ننجز بدين دقيقه شي ما خاص يادش بدون اه خويي ماستيك شما اني يادك عرفته 10 دقائق از شما دردن در رو نداره آخو این در میتونه بره اگه دردف شما بگید منه بگی nachher, ne. Ach, sag doch. Jeder weiß, warum er. Sarah kommt. Sind ja. Crisi, hamuda. Vollenadachten. جو شو دیگه زدم بیرونیه خوبه خوشگلتون میاد دندل میهمون ان جا هسته واشترش اومده تو چه خبره هیچ نشاسی ندارم همه خیسن نه میگم خیسن انا خیسن ساموم هم میه دیگه درو گفتم سرکو درو گفتم همون نبودم اون خیسی که اون دارن بازی میکنه چه بازی؟ بطری بازی چی؟ بطری بازی بطری بازی چیه؟ هم که میشینیم دوره هم دیگه یه بطری میزنیم و اصلا میچرخونمش سرش و هرکی رفتون باختم سرش؟ سر بطری دیگه من باختم خیسم کردم مثلا تصافی کنیم من شما میشینیم دوره هم دیگه خب؟ مثلا بطری خب؟ من میچرخونمش الان نشود بایی درش اله رفت بشم خیلصم میکرنه اله دفع سن کار بیفتواله باشه چجوری اخه چی چجوری؟ چجوری بیخیاله چند بلخشمه؟ جواب خدا رو چی بدین؟ جواب خدا رو چی بدین؟ جواب خدا رو چی دیرم بازی میکنی؟ او آدم کنم این چه بازیه؟ این چه سر بازیه؟ این چیه این علامت چیه؟ برو تو بدینم بزشتی برو آنجا باشه؟ چه اله من ماه گرفتگی اصلا مادرزاده این جبونیم نگه سرکا والا ما جبون بودیم می جنگیدیم ما می جنگید کوبا کی همین دیگه اگه بود می جنگیدیم نیست که همین دیگه واقع صداتونو برین پایین چشم ما نمیگرین نجنگین بازی نکنیم واقع صداتونو ببرین پایین باشی می بوریم چشم ما گشت همین محل نیم اگه مشکلی بود مدر خدمتی نه مشکلی که نیست دست از این در نر نرم نیست هست بگیرم ببرمت کلان تری بفهمی مشکلی هست یا نه مشکلی هست این منم که چشم روی مشکلات میبند میفهمی بله کی من چون فهمیدی بله من نمیفهمیدی میفهمم شما قاقا علیه لحظه اینجا باشی من میرسم خدمت ببین چند نفرم اونطور؟ ده دوزنم خب میشه دوتون چون میخندی؟ نه خند نکنم باش برو یه تومن بیار کجا بیارم حس بشه یه تومن خند همشو خودت نده دیگه بالاخره هر که یه ست توم اصد و پنجا تحجیبش هست دیگه من میتونم کارتتون رو ببینم برای چی؟ کارتتون رو ببینم همینطور ببینم افره معمولم که نباشیم آدم این دیگه اینم کارت ببین من همینجا ببین بس کی بگیرم اولا اما نداره حسابانی هست بدم بده ایم آلا کاشی زنگ بشتره بریتون مدت خیلی ندارم زنگ بزن رو چی بگم آقا تو چی گفتی بهش؟ گفتم مثلا پی باید نکرم هید دو دقیقه گوش کن چی داره؟ چی خواه کردی؟ چی این گفتی کچه؟ این... خیلن پر میشه چیز فرمه خوب ساختین آهنگه را پس کنش کن بروش هم به دادن ترش هم بالا آمد بزنی تو این آهنگ های روز خیلی بتر همه چیز میشنم بیاد چورو بکن فرق آهنگ روز درس هم که میده هنو پولشو سر وقت نمیده طلب داری الان یکیش از همی پیمان خودمون خب چرا نمیدن بارو بگیر راداشو اینجوری هر وقت خودشون بخواه میدن نه اکنه ای بابا دیویستان هم ندارو این بابا بدیم دکشی بره یه چیزایی دارم بلی پیش همه هاست بگم یه دیکر بوش کنم بیولونه گوب بابا ندارو این یکی دارو آه و اقلحن این خونه را داری بسید تو بازاشتن ما میگن بلال بچه ای که به دانوید یه تو هم میدن چیکنه مقای بکنیم به پیمان زده بسن پیمان اگه باش که پولو من را میدم باشید داد علی انا میترد یاق منطلای اون آهنگ قربونت راحت باش تو نخواوید قربونت برم آهنگ تو گوش می‌کردم عزیزم حیف نیش آقا ماستون دیدی لاویرچه شاهکاری ساخت و سیدیش داره میاد بیرون در 3000 نسخه سلام ها ماجان چطوری بله سلام راضی به زعمت نمو دیدیم راستی برزه خودش داش میاد پولو بگیره والا گرفتار بود اون ماجون تو بگیر بخا آره دیگه اگه گرفتار نبود که در همچین یه سال رفیزش رو نمی پیچوند حالا رفت شد دیگه گرفتاری ها خدا رو شکل بله بس بده دیگه چیو چی میده امشب تو بگیر بخوا بله میره میگیره میاره میده امشب الان ال امشبه دیگه از پیمان میگیرم میدم امشب چی از پیمان میگیرم می امشب خب آها آه بهتر این آقای برده با اوردن هم رفت با خودت ببرینم طلبشو بگیره از پیمان دیگه آقای بارزه برای چی باش بره خب خودش میره میگیره میاره دیگه آها آه بعد شما از جا تکون نخورید دیگه ما بعد این وقت جون ما خوری فعالیتی بودیا من خودم همین مزوت کویش نه اینو نمیخوام من از مولدگومش میکشم بیرون و غیره من عرض نیست چی بخوام اینجا شما اینجا میمونیم زنگ زدم فقط شما که چسبیده به ما دیگه نگران چی هستی؟ اصلا من برم تو بینم پول نمیده در هر حال میگه چی رو جواب نمیده پا ما؟ هست یه زنگ بهش بزن؟ ali alternas a Și acie a Dakima-as un gado Bicito păm-a بسته کجی دیگه خریتی کرده نمیخواد بدش کنه نباید بیکرد بنده تون بازم این همینجوریه شما کی میتونی از یکی دیگه بگیری باشه شما دخالت نکنید Pobo in hè šeškeru inno ešo, Sarko. Well, in giro mi kone mi rezi rufatuna. Keci. Gerak, Sarko. Bebendit. Befarni. Boš gelipi, Shuma, D'inco. Salamu alikum, beban D'inco. Shuma? Ben bayamu zeška korderem. Aminco? Behali. حاچی تلفا میزنه جواب نمیدان دارم میزنم دروازه نمیکنه حالا اینو عوضا رفتو خب دیر وقته خانم خب دیر وقت بشه حالتون خوب نیست ها یعنی چی خوب نیست خوبم نه خوب نیست اینجا رو ببینیم یعنی چی نوک اینو نگاه باشه چی آخه بحث نکن شو برای چی, چی اینجای ما که باید باشه خب من به اینجا مشکوکم پیمان بیشت تنش نسبتتون شوهرمه شوهرت رو در باز نمی‌کنه آخه بیان شما شوهرم بوده خب منم بودم دیگه باز نمی‌کردم حالا من چیکار کنم چی زدی یا ایشی چه زدین؟ چی زدین؟ کرک رو قندم مشکل من هم؟ با معمور دارین حرف میزنیم خب کارتون رو بکنیم این در رو باز کنیم یعنی چه این در رو باز کنیم؟ ماشین شماست دیگه عقب بیشتیم ای کوفت این همه از درات تک خوری ها جنس ها به پوشن وقت رفته بر میگردم میگو سی و پنش تا نیسکا در در دهلی این هم زندگیه وقت جوابشو میده مگه من بلش کردم خونه نگرفتی هنو هرچی پول داشتم پولی مهریه شو دادم سبا اینجاره داری آره خوبه به شرطی که ما خودم بکرم گوش هم زنگ میزن یا صدا میار گوش هات زنگ زنگ روشو هم زنگ میزده بیا بشی کجا میرفتی؟ داشتم میزدن بیرون دیگه خب بزنیم کجا بزنیم ندیدیم اگه حکیم رو تو نمیخوای پرویده میشه باونم فرما خو منزم سال بیمان جام بربونت برم تو میره با حکیمه خانم حرف بزنی یا من برم اه کوب همین لبندی ها رو کرده دیگه جاوه درست نده که این میاد دمه در اینجا ببین من پلیس آورده اون با منه اون پول میگیره برم ده همین دیگه برعث شده انگار من معتادم وان داره هر بار حالش خوش نیست هر برو جنس خوب پیدا دادن متر زنگ اینجا می‌ذاره با چای ما رو بگیره چه بدبختی ها پیمان جون من تو زندگی مرد زندار که نرفتم بخوام اینجوری زندگی کنم آقا مسعود خدا شاهد به جون خودش به جون بابام اصلا وقتی که اینا دانشجو حرف دادن ما غریبه بودیم من اینجا کار می‌کردم خبری نبود تموت که اینا می‌دونی چه نیولی با این حرف بزنید چی از ذهنت گذشت که اومدی بیرون از اتاق خسته؟ پیو من جوونم خسته شدم. شش ماه منو چرا تا حبس کردید؟ حالا من واسه من کن. شش ماه اینا هی رفتن و منو تو من قایم کردی تو این اتاق. به خداو معصوم که حالا غریبه نیست. دیروز می‌خواستم فرستو برنج بخورم خلاص کنم خدامو. یه دونه سوپ بده به من. بی شور دارم حرف جدی می‌زنم. آخه دیوونه من اینا چراجه به من فکر می‌کنه؟ چی فکر نمی کنه آقا مزدود آغاز فهمیده می فهم به من چی میگم میگم برو با این حکیم خانم فشنش صحبت کن بگو خانم ما جدا شدیم من دارم با ایکی زندگی میکنم شما داریم مزاهمت ایجاد میکنیم ایچه بددختی داریم آن برو پیمن چونه نسترم گرفونت برم من نسترم رو کفن کرده برو پیمن برو برو خب سر من جوری دارم میکنم ببخشید آقا مز دیدی همینا میگم دیگه حرف از ذهن من در نیامد دویدی رفتی پیشش بابا تو شله این زنی تو دوست داری این زن رو چرا اینجوری می‌کنی بابا هر بار میاد دم در این خونه تو دست و پالت می‌لرزه چرا داری با منو خودت بازی می‌کنی چرا ما اولاخ تا... اس بابا تو جمع می‌کنی دیگه نبینمت وحشی بابا چطوری؟ خالی؟ کجا میدین؟ آه راه می چی شد؟ زنگ, میزن. زنگ میزنم زنگ میزنم با بایه عفت میزنم چی شد؟ میدیشم مطاب باشه بید اونا بایستم پیمان چی شد؟ خوش سکته کن گفتم بردگار آخه کجا اینجاست ما بخ می خوایم به خوبی مگه اینا بذارن هی میره اون میاد هی میره اون میاد دیونه شدم به قرآن بخوابه اینجا کجا بخوابم دفعه یه حیوانه ملا آموزشگاه اوقات میدونه بام خوش گفته هر تو دل کام بابام خودش گفته هکی بخوانم خب کار طول میکشه خطرناکه نمیتونم برگردن دلفانشه بگه ببینم موبایلی سخته تو چرا خود دروغ مگی؟ بزن که بخوانم بزن این درست خونه اکی میشه بزن حق داری تو کلده کجاست؟ ماله آموزشگاهه همه آموزشگاه, هم آموزشگاه. کلیدشون دست منشیشونه بیوقت شه کار زیاده هنرجو زیاده کجا رفت؟ ساکر من هرچی میگم شما قبول نمیکنیم که همینی که خانم تو بودن جرمه خب منم جریمه شو میده تو امشه باقا پول میدی؟ خب اگه بازت خوب شده پول ما رو بده تو چی میدیم بسی بده دیگه چیزو توی تم نمیدیم اگه اوزاما خب میگه مجبوری تو در بزید, روزتر بزید, روزتر بزید, روزتر بزید روزتر. خب تو کار دارم توی زرزت زنگ زنگی ببخشی قرد نمکنم چشم گوشی چشم دیگه گوشی گوش می‌بچام، من داشتم باهات رنگ نکن ویکتور. چه نمی‌پری؟ اصلاً دوست دارم، چی میگی؟ ولی دوست نداری پولمو بدی. آفرین، دوست نداری. ببین من زنم نیستم اینطوری با من حرف می‌زنی. یعنی مشای با من خوری نمی‌دی؟ یعنی چی دوست ندارم؟ تو من مسخره‌اتم سه ماه داری به خاطر یه تومان من سر می‌دونی. شما یعنی 200 تومان نداری با این ظرافت؟ سرکار، من همه زندگیمو برای مهریه دادم. اجاره اینجرا هم به زور میدم. ندارم، باور کن ندارم. کولاتورم امشب از مسعود میگیرم میدم خوبه؟ گدون مسعود این مسعود مسعود سایگه مسعود گاوه کيه من دو منو باید تسوب جور کنم یه منو باید با آقای سرکار بدم 200 تا به این یه تومن به من 200 تومن به آقای سرکار اون میشه چقد؟ سه و 200 خوبه سه و 200 طلب دارم دیگه سه و 200 با 400 چه فرقی؟ ها نمیشه والا شاید شوخی آقا سرکار این چقد بود؟ 80 زره بود 100 زره بود بزن ما بریم ها هشتن رامی من چرا باید بیام در خون تو من هم گرفتار و پور هم باخی تو پور داری؟ نه پور داری بگه آقا با میان پیش رامی پول داره؟ بگه جور میکنم دور هم؟ یک کمی باید وسیله بگی شما با من بیان ما آدم نکشیم که سربا با ولی این یه قلطی کرده ولی اصلا به قیافهش میخور آدم خطرناکی باشه بذار این با ما بیاد دیگه بنداتون رو اصلابم اصلا ما کجا میتونیم فرار کنیم سر کن این تو تا خانم نکشن هم دیگر تو همیجور باستد اینجا این چه بلایی سر خود تو بودی؟ اینه قرار ریش بشه بعد هم نگم تو بعدت نمیاد نه بلایی سر هم بیاره نه؟ بای انا چقدر چی شده را؟ من چی واجودم به کی؟ 1 تومن باید به من بدی. خب 200 تومن به سرکار، خب 2 تومن به خودت، 1 تومن هم به پیمان. میشه چرا؟ 4 رو 200. ای بابا. زن چی؟ حکیم خان ما اصلا قصد ازدواج نداشتیم. چراختی این وقت شب اینجا؟ کار می‌کردم گفتم که ای بابا پیمان. آقا عرضه داشت اومده بود، نخواختیش. چیکار می‌کردم آموزش که الان؟ او پرونده‌ها رو درست می‌کنی، بدهی‌ها رو حساب می‌کنی، ساس کوک می‌کنی. چی شد سرکار؟ ما کار خودمونو ولدیم خانم خب یعنی چی ولدیم خب چی شو بسپوریدش به ما دیگه شما بفرماییم شیرو بسپورا به شما تا حالا چی پا کردیم شما بفرماییم یعنی چی بفرماییم با مهمور بس نکنید خانم بفرماییم چیزی شده دخترم نه نه نه قطعه بیستی بیستید اقام بیستید اقام با تو پیدان. اس. مشورده. یوراکی <تصحیح> میکنم، دیورینگ بولا. یچای بخور، سیگار. عصبی شدی یا؟ آ، عصبی شدم. قرآن صورت داغون شده. دیدی داغون شد؟ بابا ننه، آوازی کصفات وحشی اخر وقت. مات. یهو چدیمتشو بده، اشکال آوازی. قبر میدون ببین تو نخابه نازمه نمیخوا به آقا بخوا باید شم بخوا زنگ دارم بخوا بخوا چرای شم؟ شو. چیتر نگفتی؟ جان؟ بایشون هست؟ آقا شم آقای حال هم که گفتم که کلی شهرونده شدم که حالا به کس دیگه هم گفتی؟ به هرکی فکر کنی شما آخری هاشید اصطور ما آخریاش هست آخر بدهی رو بدهی آوردم که کف کرد آقا میگم گازشو بگی برو چی گازشو بگیره؟ من برو بله مونده میپنم تصدیق هم دست شد اصلا تو کجو داری میم؟ تصدیق هم دست شدی بگم بیشون رو بگم کاش میخوا بگر کجا؟ بیرون رامیلم میبینیم با دست تو برداره دیگه شما با این حالت میگه مجبوری کار کن مجبورم دیگه اگه مجبور نبادم که کار نمیکردم دیگه قصت سنم قصت این رو باید بدم اجاره خونه است مجبورم دیگه با ماشینت نوه شما چی فکر میکنید نوه فلاستیکاشو نکندم فلاستیکاشو برای اینکه لازم دارم نکندم فلاستیکاشو اگه میکندم این موقع شما نمیگفتیم نوه الان چرا میگی نوعه بران که پلاستیکاشو نکردن میکنه ناراحتی ما نبین داداش سر به سر این رفیق ما نزد یادم خطرمان که چی کار کرده شما یکی رو نکله کرد این چی ببین این حرکت آخر رو نباید بیرفت اگه تو کوچو مادر میده نازش می‌کردی اون خون نواد میده یه لحظه خون جلوی چشمم گرفت خب چجوری کشتی قتل همسایه‌ام میشه که این قضیه زلمه میشه تا مرد آجار. آجور آجور ماجور دیگه میشه شاذری یا چوم چومش پوکی شوهر خوهر من را کمیه دونه اینو خریدیم اون پنیزار تا بیشتر کار کرده منطقه استارت میزنه کل ساختیمون از خواب بیدار میشنیم این منطقه نه یه استارت خیلی کچیک نه تو دیگه. تو چه کار می‌کنی؟ تو آموزشگاه باعث همه آوذی بود. خاطرت سر گوزادی به زندگیمو. تو چیکار می‌کنی؟ خا روم، خا روم چیکار کنی؟ خا روم بذارین داخل بریم ماشینا رو. خا روم، خا روم با شما هستم. خا روم، خا روم خودتا داری می‌بینی داخل. خودت داری می‌بینی. خا روم، برای طرفی می‌بینم. می‌بینم. خودت داری می‌بینی. خودت داری می‌بینی. هرش نخور از این سمت سرکار من کرد تو کجایی سرکار پون می اومدی اینا چی هست وار ماشینه من کردی سرکار نمره شو برداشت آقا آقا این خانم چی بو من چی کار کنم حالا چرا داد می زنی حضینه شو من می دم خب بده بده بیاب بده حق داره برده کنم بود جاغوم شده سرم آقا برد آقا بفرمید کنم آقا می کنم بیا این کار کارتت چه درام می‌خوره آقا بگو من اصلا حتا کارت بدم به شما آقا بانکی نیستن ایشون میدن دیگه این وقتی بگه میده میده آقا میده آقا آقا من همینجا با میستم افسر بیاد گروکی بکشه این افسر بیا اصلا ده من چه مگه من زدم خودت برو دنبالش این کارتم بده من کارتتو بدید ایشون حرکت کنید تو راه مردم حرکت کنید سرقوم اصلا اینکه من صاحبش میشه نکونم دیگه میخی دراز بکشن با ماشینا دوم رچی من عاشقتم مثلا همین چه خوبه همین چه رو برای انگلیسی تو خوبه من داداشم دوبه میرم مدرسه دیگه مثلا همین رو هم بیم بازم همان جا باشه سردرد داریم اصلا داریم این ترک <coughs> قرس سر درد داری؟ قرس برنج داره. ببین حکیمه داش منو میکوشه تو برنامه‌چی نگاه کنی طلبکاری الان؟ خودت اومدی بیرون. معلومه می‌خواستم باج حرف بزنم تو که حرف نمیزدی الان تموم شد خلاص. حالا چه خبری نمیشه؟ الان مسعود ببینید چی میشه دیگه بیچاره. مسعود به تو چه؟ خب با هم می‌آدیم با هم بعد اینکه گونا داره بیچاره قرآن قدالم سوبراش. کیلی ده بده. کیلی بده. زهره مار نخند کلید بود دره پیمون نکنم نفت دارم کلیدو بده من بیا گدا چیه هی کلید کلید جلو مردم داد میزنی؟ <تصفح> بادم من بوده نگه دره پتر دارم باید کلیدو بده کلیدو بوده بایده من چرا ندارم چی رفت داری پیمون؟ شما یه چیزی تو میشه ها این بچه کجا بره این وقتشا؟ دخترم دختر هیچ ملوم هست چی کار میکنی؟ چی کار کردیم؟ قضیه این چیه؟ بی به حسولی تعریف کردن داستان بگیرم فقط حسولی به داستان بزازیم بل بسه در نکنم همین فقط واسه هم سوال بگیرم ها نمی دونم 18 اپیزود یعنی 21 ام تموم شده رفتم تو بوسوره خیلی خوب نبود دستسازم بعد هر با난 که مثلا ما خونه نداشته باشیم و اینکه من خونه تنها میترسم شب‌ها تنها همین آره مثلا جلوی اینا که نمیخوام بگم من خودم کار خونه آب معدنی داشو بعدن ورشکستینم شد بعد یه مثلا مامانم که طلاق گرفت یا مثلا عصبیबाजी و اینا مثلا رفت دبی الان دبی زندگی میکنه مم. بعدم مثلا تیمارو میزد یه بار خودش شده بردارم اینقدر اینجا شکاف همه جایش هست بعدم ما به هستیسینا هم رفتیم به هر خودم ما یه بار میرم بیمارستان شکر عصبی میگیرم به تیری که اصلا این میلرزه برم دیگه. مشکل شما اینه که تو خونه نیستیم برم خونه با در خیلی خوبه همینی که دوره هم بشینیم گپ بزنیم مشکل هم بگره بگیم کس به شیم بدیم توی گفتی بیا که سلام سرکر سلام علیک من گفتم پول درم می‌نیه بالا عادی نشین قایید می‌کونم غلط می‌کنی چرا لاتبازی در میاری تو عروسی خواهرمش میگی تو نابودین و همه بهانه آوردین و نماز رو مفته تو فقط می‌خواسی به خاطر من بیای بیرون من نگاه کن چه مصیفت میگی اینو خیلی بی‌شوهره ما سر از شب گیر دادم میگم بیا وسط وسط وسط شلپ به بوشو گیر بده رو جلابس عروسی خواهرش سر کار دعا بردی دعا بردی بعد التماست کنن تو خودارتیک پوللاشام باز ایشکی آدم ماس به خودت هر اخیری ندیدیم. توپالو بیو پیش این بریم. الان الان فقط از اینجا بریم. تو فقط میخواین الان از اینجا بریم. من جورش می کنم. من با خودم جورش می کنم. خوش می کنم. واختلت. اون نادر زاهر کن. بله. شما ببخشید تا اینجا اومدی. دیدی هر جا رفتیم نشود. جور میشه. تو حرف نزن. ساخن معلم موخام تعجیل است. یه تصابی افتاده اون بالا. وای ماشین. تموم شده کارشون باش دیگه. خواهش می کنم ازتون. جورش می کنم. شما روشنش کنید. چش مرسی. آقا مسعود. بیاید. Ne kenua. Veis? Domasi jan. Ne ciro adam. Habime ma dicu masin. Cel. Cel. Habime yango sagatti. Ne düs san. inam gushkun bemen projectni tasdiq etaman می‌خاری تو که من جورش کنی؟ آخه بعد فکر کنم تکه کا میزنی واسه من؟ رو کاغذ می‌نویسم شما مردی حله؟ چرا عصبانی‌بازی در میاری؟ عقده‌ای؟ یه خفاش کن اینو دیگه. خفاش کن دیگه. خفش. آخه چی شما به من دوباره افتادین؟ ما اومدیم گردش. خبش سر خون زندگیتون دیگه. راست میگه بریم. برو حموجش کا، برو قربونت. با همین دیگه حالا. شاید یه فکری به ذهنمون رسید. بیرون خوبه. ای بابا. من بیرون نمیشه شهر بازی؟ باونی دیوونه <تصفيق> پریده چی؟ پریده زیاد خورده بودن بریش شمال بله ماشین هم هست بفرمه که آقا مسعود حالشون که خرابه بهتره. واقعا اعصابی که میشه، آدم خیس میکنه خودش رو سر کار. نمیخیش شما عامل جای بوخصوصی هستین؟ چطور مگه؟ این چی لهجتون یه جوریه. بخدان من میخواستم به شما بگم لهجتون شهرستانیه. من نه. نه چی؟ من سوال میکنم آقا. خب بگو کنی همین دیگه ما اینجوری نمیشه. خب دو روز دیگه بهش بده. بکی. به صابونه نمیشه باشه. نمیشه. بابا اینا کارشون ترسوندنه. بازم بهت وقت میدن. وقتاشو داده دیگه. چیکار میخواد بکنم؟ تا بخواد شما رو بلند کنی یکی دیگه رو بیاره خودش یه ما گذشته. بلند من بلندمون کرده الان دیگه. یعنی الان جا ندادیم؟ نه دیگه. من زندگیون کردیم توی اتاق. این پولم تاشب نمیخوام دیگه. ای بابا شماها چرا اینطوری می‌کنید ما خودتون به خاطر پول خودتون کنترل کنین چیزی نشوته ما رام صابونه بیرون کرد اصلا بابا این کارا رو نکن قشنگ باهم ذل سرما تو داداشم نوزاد باهم قشنگ یه وانش گرفت همه اساسیامونو خاله اصلا مهم نیست امروز سیدی چی بச்சو ما دادی مامان این کارو آخر خودمون جداً دست نکار گوش کن نظر رامی به خصوص اینا گفتم بابا تو به خاطر حساسی نشی ما گرفتار شدیم ها یعنی شما جمعاً 200000 تومان ندارین آقا داشتیم هم نمیدادیم چیه تو از سرشتاری گیردادی به ما؟ نستو شد ولی کن دیگه غربونه دیگه باز ما قلاده تون باز شد بلبل شدیم برای من به شما میکن منبول آخه بریم موتورتو نارد نداره ببخشیم موتورت سفرم بیستو پنک شهست سفرکار بیستو پنک شهست جلو نه یه چی میگه آخه بین بسه تو آرون باشه شما بیخیه میشه این آقا کسی دیگه این نداره بریم پیشش ببینی چی کار میشه شما حالا کتابی هم این ما درسته شما چی چی رو کتابی هم خودتونم باید دیوی سیزار تومن بده این خودتونم باید بده این آقا این دیگونه من کرد ببندینش این بنده تون این گیره ها چقدر بری پولین رو جور کنیم بره چرا بامزده هست که بامزده؟ دو تومن محسود مهمتره رامي رام یلا سب کن مسعود میگم اگه بریم پله مرادی چطوره مرادی گلوم خریه مراد تو چه اینجوری کردی میگم مرادی کیه باو سر دفترمون دیگه خب الان میگی چه میدونم داشتم فکر میکردم این موقع شب چی بهش بگم خب دیرتر که بدتره که چه بهانه‌ای براش بیارم خب راستش چی بگو راستش کمه مسعود خب بگی چه خانوم ما خانومتون خوازم من خانوم ندارم آقا خانم این آقا میگیم خانمشون پا به مان بعد باید... یا نه مثلا بگیم که زدین به یکی با ماشین بعد ارجانس تا پول ندین قبولشون نمی کنه معمورم با آتونه چیشو؟ چقدر عشبه میگم چی شد چیزه باز عصبی نشی یا زنش مرده الان همینه میشه آره یه زخن مرد بایی من گوشتن گل بگیرن شانسه تو من سود سرا به من میخندی نم نه بابا کیبت خندیدم الهی بمیرم تا زنگه در خونه مرد نه پقی زد زیر گریت افلکی حالا تو نستی بهش بگی یا نه واق فیمان جون یا آدم مرده ها میگم حالا بریم بالا یه تسلیت چیزی بهش بگیم بعد من بهش میگم دیگه آخا میشه تو این وضعیت دستگی داره که این مرده باشم بیو بریم بالا یه تسلیت بگیم من بهش میگم خب خب میخوایی شما چند دقیقه بریم بشینیم من هم میرم ببینم یکی از دوستام دار یا نه باشو بده با من میریم اون دیگه نه آخه دیگه دیر میشه میخواد بخوابه آخه برجومون من میام تنها نه میرم آخه مرادی چن شرمنده خدا بیام موضوع آخه اونم موقع شب آخه به تو واقعا هم شرمندهام کردی دیگه بعد ببخشید ما تو عروسی بودیم تا شنیدیم دم اونم خواهش میکنم بفرمایید منجی بفرمایید شرمنده نه خواهش میکنم بفرمایید خدا بیام بفرمایید بفرمایید بفرمایید شما. آقا ماشو. اون واسه. من جا هستم. بله. خدا بیاموت. رحمت خوند. شو. می‌بینم. بله. یو. نرداشته باش ببین برای فرزم اگه چیزی کم کرست داشتی من خواهم بله بفرمی خواهش میکنم بفرمی خیلی ممنون ما جدن متحصف شد خیلی علا تو تو ممنونم این موقع شب من شرمنده کرد خدا رحمت کنه رفتگان شما ها رو بازه یک کاری چیزی هم بود در خدمتون هست خیلی ممنون رو همین جان دستتون درد میکن شما با رفقات منو خجر زده گردین این موقع شما بفهم بیام هتی کوری گیر کرده فکرم همه جا می رو خیلی نست دارم دختره گوه اینه حتما باید گوش کنی پیمان چی گفت؟ گفت بیاید کن تو همین پیمانو دیگه مالو پیمانه اینه آخرین راهله برای اینه کتا کردی؟ عوضش کمتر میکنه باید میان خدا کنه دروشش نمی‌شه. هوا چطوره؟ خوبه. کماف سابق افتضاح. ببینم. چه؟ هیچ. چه خاستی بگی؟ این شاده چقدر بهت میاد همین قدر جو خواه تو بدون کارت خیلی خوبه تو بعد از من دوبامین نفری هستی که نمیدون یه چیزه میشه هر سی که میگه الو مسئول نه اینجا هم قبری نیست ها دارم بیا خداحفیز آخرم نشد هما نبود بیشتر تو سر داشتم حالا هما نبود منم تو رو بیشتر تو سر داشتم فکر ببر کنه بوش کن بیا مهم نیست برات دیگه هما رو چی کار کن چیزی میخواستی بگی یا حیف اینجوری تو چی؟ من که بیورزوی عبدیم خدافز تو دا... یه دوستی دارم باباش خیلی پول دارن باغ دارن اینو چون که امشب گیر افتادم دیگه 咖啡 شما الان نبید کجش میکنیم نفه این صافه نه کجی بباشه شما موقع استخدام ایچ مشکلی نداشتی؟ نه یعنی الان شما اینو کج میبینی؟ نمیدونم الان راست شد دیگه این کجی نیست آقا نه راسته آنه یه بارو به ما اعتماد کن بایی من فکر رو میکرد که سه هشتا میکنه بیس چهار تا من رو تو سبه اول وقت خوشیم بریم بانک یه هرمه بجورد فول من رو بگیری فامیدی بدیم این آقا مسئول به انتخابه که هم که اشرا میبسه ما حقوق تو میبینیم آره دیه برنی که نه ماه یه ما شو گفتی آزمایشی که اما حقوق نداشت هشت ماه دیگر شد پیما ایمان ها خرجش کردی خرجش کردی شرا احتیاج عزیزم احتیاج روشی پول منو همه شو همه شو مالا خودت بکنم ارسو باباتو خب تو بی خود پول منو خرج کردی ایمان برای چی مخندی؟ بی چشمارو یه قد زحمت کشیده بودم من این مال من خوردن دار آخه ای ماده ایشکی رو نمیخوره اه. خورده دیگه یه عمرم بگذاره بداخلی بدهیش رو میده دوست الان صافت را ها برو بیای هلو ندا چند جرفت نیگه؟ بیشتر دور شده. آره دیگه خلاص. یکی دو تا دیگه میام، بقیه‌ش هم دور شد. تو دور شده بدونه. Oh, shit. شما دارین خودتون رو از بین میبرین خب چرا با خودتون اینجوری میکنین ما بایدین نردم چه بد دختی دارن چه مشکلهایی دارن خب با خودتون اینجوری کنین که چیزی درست نمیشه آخه از این کتونی ها دختر نشم بردین خب بابا میدونین چرا از سر شب به هیچ جا نمیرسین برای اینکه ای پریشون رو اینکه ای الکین درون در میزنین جمع کنین خودتون رو یکم فکراتون رو بز لوب داستان داریم ما با شما. فعلا یه خورده تمرین کن. آخ، خوره‌ای اول زو کن. می‌بینی؟ یه من اینجا قدرت انرژی می‌ذارم. ببینیم چی می‌کنه. هرج و مرج اصلا سر مالش بود. آقا بذار بوش کنم. نه کام. چه بی قراری. باز هم نه. باز هم نه. بازیش که کارش ده بود. چی گفت؟ نه یه‌دوی روزی تنها هم بذاریم. چقدر ببینید. این تفی چیزام دستی بده. خوب بگویشتم دستی به ما بدید. آی آی پچینی داری تو دخلت بن بدی؟ برام خودم نمیخوام. اگه داشتم که الافی نه نبودم بیچاره صد. این کارو آخرمه. اوکی الله. کار آخرای آقای برزوکان. اثری متفاوت. گوش نکرد باایغانیش کردیم. بخدا ندونم میبینین که همش دلگیرمون برای شیشه. بابا اومدن با هم کار کنیم بابا بایه بونه ماهی قشنگیت با بازم اینمی چی میده جونم یه لازمه این میکترو کنه برس میام وایس آمده خب آقای برزو خان اینی شما ما مخواهی خالتور کار کنیم با اینمی دیدم حق با توه یکی متنبه شدم میخوام برگردم به آقوش و جامعه <تصفيق> میخوام هنر رو با صندت پیوند بذارم تا دیگه پیش قصه نمیشه بهم بده ببین فاده کاره مسترینگ اینجا فدای چرا که نه هم راحت هم پولش خودمون از اول همین رو بد می‌گیم اسم و عکسش هم بزرگ می‌ذارم روی کاور سیدی حالا اسم وجودی نداره بزنیم والله اسمی بزنم دیگه اسم عمه رو که نمی‌تونم بزنم چرا اسم محمدو بزنم از نظر شما ایرادی نداره نه یعنی ما اینجا داریم کار می‌کنیم اسم می‌زنیم یه مشت پهن ما تو نظر شکر یا داریم دوزی میکنی حس شروع کردی یا یعنی گندشو در آلی جانت مهم کاره که دارم میکنم دیگه نه آن. کار نمیکنی تو خوب حالا اسم نداری آقای برزو خوان چیزو بر میکروفون درست میکنی تو فقط حرف میزنی اول نمیکن حالا خوبه هیچگی هم نمیشن سفیه کن ناز میکنم من آماده ما خیلی اون فاصله شیش آ این بحث هر دفعه بین من از تو داره تکرام میشه هیچ نتیجه یا نداری او رو به کارت برس بابا men charge nadaram ha chi chi qanko takdi naris ekizunay yani shaki nadaram koi asu bo'salar dar hech nishu bado ko nadaram chi nigotin chi ko بابا آقا اینا رو میسازن نه بابا واقعی بابا تیمون چیه؟ تیمون کدومه؟ میسازن ولی ببینم هیچی یعنی چی هیچی؟ ببینم کنش برای این که چیه که آنم تا ببینم؟ چیه؟ سیمون ببینم؟ بدن چه آنم بخوره؟ بفرم بجنبه؟ برو بچه همین دیگه آقا پیمون نه؟ بعدم بیده این کارات خب من یه پسرمون داشتم عشنگ حالتا شنه حالتای تو داشتم تو روینام یادمون میبزم ولی میدونی چیکار که زد تو دهن همه رفت خارج به هیچ کنه هیچی نگفت مثلا هنوز که هنوز امومینه دارن دنبالش میگردم تو همینطوری کن اصلا چرا اقای اینها رو تحبیل میگیری؟ بی خود کرده اینجور با طرف میزنن مثلا اومدیم یک کاری با کاریم برای اینا ها برای این آمدی یک کاری بکنی بعد هم ببخشی ده حالا زحمت کشیدی برای مثلا از سر شب تا حالا چی کار تونستی بکنی ای جور میشه جور میشه آقا رامی بعد این رفق هم تو داری؟ بفهم مجبوری اگه ببینی اون, اون که گفتی راست بود چی؟ اون پسرم بود رفت دانمارد بفهم آقا شاکیبا آقا شاکیبا نه آقا به روز رفت من... بگی این دیگی رو رس در نکنم ولی پاهم گرم شد بشایی شیشه است چی؟ نه این بیس پنجه هفته به پنجه دن کنکورچه شد اونطوری شد ببینم درسته شیشه است شو. نه دفتیم نه شد نه بگه جایی نداریم بریم تموم شد برده بریم آقا شما گفتیم بنداتون که بازا راحت ترین بنداتون که بازا راحت ترین این آ آ سایبان نجیبی است برای چی خب می خورین هوا که می‌خواد بیاد بیرون بعد مثل... گلو ها بعد دیگه بعد فورچ زیاد خورده بودی فکر کنم با شما خب بعد دیگه تو خیلی خوبه فقط تو این شریعت زنگی نه نمیدونه خب هر چی دوست دارین گوش کنین قشنگه من دوست دارم دوست منم دوست دارم خطا متا... خطا تمرکز می‌خواد نداری خب یه چیز دیگه بزنین ام من شراره دارم بزارم باستم شراره در سکی شونه کردم شماش راستن اون آهنگ خودتو بزن وقعی بذارم آره بجنم مجبور میشیم شراره گوست شراره چشه ها استران شبه هم عموزشگا کار میکنه نه روزا کار میکنه شبه هم میخواه نه پدر مادرش هیچی نمیگه چه پدر مادره میخوایی بگیری شبه <تصفيق> نه بابا راست بگم نمیدونم چگار کنیم الان؟ میکنیم الگ کاری؟ ها، یه بگیرش که بفرست بره خونه‌شون. کجا بفرستش؟ بازوشون خرابه. از شانس آورده بتونه تو خرده. خب نبودم که تو خیابونا ول بود دیگه. محض خیرخواهیئه. بورجو جان، پدرش، دد مادرش رو کشته. بعدش هم اوه هو هو. خب همین هیچی بهتون نمیگم دیگه. خب بعدش هم چی؟ اصلا هرچی دوست داری. بگو باباش کنه. بیا رامین شو. مرسی. عاشوت. بریم. میخوای بریم خونه این ما؟ میگم نشد میگه بریم خونه ما کجا می‌ری آقا؟ کوچه ما لب چوب منم باید برم لب چوب من که جرأت می‌کنم بی پول برگردم خونه. یا کوچه ما چوبش گشاده همه جا میشه. یا تو بزن بچه بیه خونه ما اینطوری هما هم جلوی نیدا چیزی به من نمیگه. بابا هما بچه‌ی منو ببینه دیگه نمیذاره لب چوب بشینه. بله درسته. پس با هم میریم آموزشگاه می‌مونیم. آره چوب چیه میرم آموزشگاه بعدی دوره همه ایم رامینم مدوسط می رخصه فکر کن نرخصم فکر کن ولی بعد چند وقت دوره همه خوبی داشتی ما آره این دفعه که تو تا خیر خیره گرفتار شدی ما دوره هم جبرام میکنم بیا برسونمت بیا کجا برسونم بابا شما این وری من این ورم چه رب داریم به همه سن چطوری مخواهی بیر کنم این هم دیاره آمسود اگه این وری هستیم خود ما می رسونم اتونم بسه اوکیه برو هم بریم ما میرم واشیم باشی تو مادا او ببینیمش آها نشد دیگه نه بد نمید to zahis anga masnul go anga o maga maga mengal ko anga bra sig stir up ang送 anga ar obral چند روزه می توانید این پولو برگردیم پور خب اگه بود که سه چار روزه اون جنسامون می فروفنیم خب این آدرسی کل فضیه شما سه چار روزه دیگه این پولو برمی دارید می برید اونجا حالا پنج روزم بشه موردی نیست می دین به ما زیار از این پول ها نبوردم کنه بگیر بابا قرضه بیا شما این لباس قرض کن لباس مال خودم نیست مگذیران میپوشن گم روچ yeah. بیا سه روز دیگه میام پایتو هم ببینم به تو برگردن من نیستم bolus nisih, na? kos filho. شاکرین است درد نک. گفتم گرفتنت ها عجب دلیده دلی. یه پاشه با مرض بله یه شبم ولدت میکنن تو ول کن نیستی کوتابیه دیگه یه چشمن بذار اصلا مرض دادی یار جان تا 5 روز دیگه یه آقای به اسم محمود میاد یه پولی میاره بگیر چیکار کردی باش که چندید؟ پنج اینجا را انگوش بسن بس حالتم به از رو میز بله برون بقل به گردن دوگمتون شده